سُبْحَانَ من مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا الطَّاهِرِينَ عزیزان دانشوی خودم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 مود و شما مقبول درگاه الهی ان الله که خداوند بهترین تقدیرات رو برای شما در لیالی قعتر انجام داده باش. بحث ما در باب فصلو وصل بود و در باب فصل ما مورد اول رو که کمال اتصال باشه برای شما بیان کردیم یعنی اون جایی که دو تا جمله بینشون اتحاد تام هست که گفتیم سه موضعه یکی جایی که جمله دوم تحکیده برای جمله اوله که گفتیم تأکید. دو جوره لفظی معنوی دوم جایی که جمله دوم برای اولی بیانه یعنی توضیح تفسیره و سوم جایی که جمله دوم برای جمله اول بدله کی گفتیم خودش سه قسمه بدل کل از کل باشه جمله دوم بدل بعض از کل باشه و بدل احتمال و ما عرض کردیم که بدل اشتمال بدل اشتمال در قرآن نیست و کمتر از بدل کل از کل و بدل کل از کل رو براتون از قرآن هم مثال زدیم اما گفتیم بین این ستا اونی که بیشتر از همه هست بدل بعض از کله و کتاب هم برا همون مثال زد یو دبرو لعمره یوفسل آیات لعلکم بلغای ربکم تو که گفتیم یوفسل ال آیات تفصیل آیات بعضی و جزئی از تدبیر تمام امور وقتی خداوند همه امور رو تدبیر میکنه خب یکی از این امور هم تفصیل آیات. اما موزه دوم که امروز میخواییم بخونیم موزه دوم جاییه که بین دوتا جمله کمال انقطاعه. انقطاعه خب موضع اول چون بینشون نهایت اتحاد تام بود اتصال صد درصد ذاتی بود کمال اتصال بود نیاز به عطف دیگه نبود چون توی آنها شیه کتاب هم خوندیم که جمله دوم نسبت به جمله اول یا خودشه یا جزشه و هیچ کجا چیزی به خودش یا جزی به کلش نیاز به اتصال نداره خودش اتصال ذاتی داره موزه دوم کمال انقطاعه. کمال انقطاع یعنی جمله دوم با جمله اول هیچ گونه ارتباطی نداره. نهایت انفصال رو دارن. کمال انقطاع شده. خب اینجا اصلا نمیشه این دوتا رو به هم وصل کرد. کار رو پنیرند. امکان نداره. نگاه کنید توی متن کتاب ان یکون بینهما هما تام بین این دوتا تباین تام هست مخالفت تمام هست جدایی صد درصد هست و زاله که به حالا این خودش دو جوره این که تباین تام دارند که میشه کمال انقطاع دو جوری یک و که به ان تختلفا خبرن و انشاء این دوتا جمله یکی خبریه یکی انشایی حالا اولی خبری دومی انشایی یا اولی انشایی دومی خبری حالا اگر ممکنه که از نظر ارتباطی به هم ارتباط معنایی داشته باشن ولی نه یکی خبری یکی انشاییه ذاتن این دوتا رو نمیشه به هم دیگه کرد جایز نیست مثل توی بحثی که با هم خوندیم توی البحث یا البحث اون قسمت اولش نگاه کنید گفت و یقصدون به فصله ترکه ها زلعت قصدشون به فصل اینه که این عثو انجام ندیم که قول المعری مثل قول آقای ابوالعلای معری که گفتش لا تطلبا به عالت لکه کلام مول بری به غیر حزن مخرجالو گفت طلب نکن هرگز با هیچ وسیلهای برای خودت احتیاجی رو که داری یه حاجت و نیازی که داری نچسب هر وسیله هر وسیلهی هم به چسبید درست نمیشه شانس باید باشه لا تطلبن نبه آلت لکه حاجتا با هیچ وسیلهای حاجتی رو برای خود طلب نکن بعد دلیل برای آورد گفت قلم البلیغ به غیر حزن مغزلو زیرا قلم آدم بلیغ گرچه جاهز و منفلوتی هم باشه به غیر حزن مغزلو اگر حزی نداشته باشه شانسی نداشته باشه دوک میشه خب این دومی ارتباط معنایی داره با اولی دلیل برای اونه درست شد اما اما چون اون اولی انشایی این اخباری امکان عطف و وجود ندارد امسله کتاب رو نگاه کنید مثال چهارون یا صاحبت دنیا المحب بلها ای عاشق دنیا ای دوست دار دنیا المحب لها که محبت به دنیا داری المحب لها این لام لام تقویته یعنی المحب ها که دوست می‌داری دنیا را ای رفیق دنیا که عشق به دنیا خب این همین جمله انشائی دیگه جمله ندا یکی از جملات انشائی انت لزی لا انقضی تو کسی هستی که لا انقضی تا عبا. تمام نمیشه خستگیش از صبح تا شب دنبال دنیا میگرده شب خسته و کوبیده هر هم به دست آورده باشه هیچ حساب میشه دوباره فردا از نو تو هیچ وقت خسپا نمیفتی خستگی از تو به در نمیشه خب این انتلزی گرچه ممکنه از نظر معنا مرتبط است با ما قبل؟ چرا؟ چون نداست اونم جواب ندا گفته آهای وفیق دنیا که محبت به دنیا داری اینم جوابشه صداش کرده واسه چی؟ واسه این انتلزی لای انغزی تو بدبختی هستی که هیچ وقت خستگیش تموم بشو نیست ان الذی لا ينقضی ولی از نظر لفظی اینها رو نمیشه به هم ادو کرد یکیش انشاء یعنی اولی یا صاحب دنیا المحب لها دومی خبر است انت الذی مبتدا خبر لا ينقضی تعب جمله صله پس و ظال که بعل تختلفا خبرن و انشاءن مثال زدیم و شما دیدید دو تا مثال یکی مثال امسله و یکی هم مثالی که داخل کتاب مورد دوم برای کمال انقطاب او و الله تکونه بینه همه مناسبتون ما مناسبتون ما او ما صفت مناسبتون، یعنی مناسبتون قلیلتون مورد دوم غمینه از نظر لفظی با هم ارتباط دارن مثلا هر دو جمله خبری هم. هر دو جمله انشائیان درست شد هر دو جمله خبریان هر دو جمله انشائیان از نظر لفظی ارتباط دارند اما این کافی نیست باید مناسبت بین اینها از نظر معنا هم وجود داشته شو. وجود ندارد مناسبت از نظر معنا وجود نداره فرش کنید مثل این من الان دارم به شما درس میدم شما میگم که بنویسید موضع دوم کمال انقطاع است خو بنویسید یعنی اکتوبود این جمله انشاییه موضع دوم کمال انقطاع بعد سلام میکنم اینور میبینم یه نفری دم در وایساده میگم بگو چی خبر بگو چی شده خب این دوتا به و به اون با این بنویسید نویسید خب جمله انشایی اما یعنی ربطی به هم نداره این بنویسید من به شما دارم میگم روما کردم به طرف در دیدم یه نفر بهش گفتم به گوچی میخوای بگی چه خبره حت نمیکنم نمیگم بنویسید نویسید بعد بگم و بگم ارتباطی نداره یا مثال دیگه بزنیم فرض کنید مثلا من برمی گردم به شما میگم مقتدا مرفوع است یه نفر میبینم پیش میگم پولو دادم ها. پرداخت شد ارتباطی به هم نداره هر دو خبریه و مناسبت وجود نداره خیلی جاها شما دیدید، مثلا چند تا نصیحت جمله پشت سر هم نوشتند ها وسطشون خط تیره گذاشتن یا ویرگول گذاشتن. چرا؟ چون هر کدوم از اینها یک جمله مستقله و ارتباط به هم از نظر معنایی نداره او بعنلا تکوند. و تکون تکونه بینه مناسبتون ما اینا موزه دوم و یو و هینه ازن انه بین الجملتین کمال ال انقطاع. گفته میشه در این موقع بین دوتو جمله کمال انقطاب هست فلا شما نگاه که این مثال کتاب امثله و قال آخر غیر از آقای عبو این شعر رو گفته میگه و انمل مرؤو بسقرهیه و انما حاصل کرده ال یعنی انسانو هر انسانی منحصر از دو چیز کوشکی بود انسان منحصر در این دو چیزشه یعنی این دو چیزه که انسان انسان کہتے و معیار انسانیتش ولی بقیه چیزها او دارد حیوانات هم دارد و این المرءو به از قریه به دو چیز کوچکش این دو چیز کوچک یکی زبان است و دیگری دل انسان به واسطه دل و زبانش از بقیه حیوانات جدا میشه انسانیتش به این دو تا ولی بقیهش و چشم و گوش و بینی و دندان و دهان و دست و پا و اینها حیوانات دیگر هم دارن چه بسا قویترش را رو هم دارن انسان انسانیتش به واسطه دل و زبانش انسان رو منحصر کرد در قلب و زبان خودش نه بقیه یه حساب. خب این یه مطلب گفت مطلب دوم نگاه کنیم کلوم رهن رهنون به مالدهیه رهن یعنی مصدر به معنای مرهون گروه گذاشته شده میگه هر انسانی گروه هست به مالدهی به آنچه که انجام داده هر کسی در گرو عمل خودش در گره آن چیزی است که کشد اینکه هر انسانی در گره عملشه یه جمله است یه ارتباط داره یه معنا و مفهوم داره این و این عمل مرء به قریه یه جمله دیگه است ارتباط معنایی به هم ندارند مناسبتی که از نظر معنا اینها رو به هم به چسبونه وجود نداره بلکه که چند جدا از همه هر کدوم از این جمله‌ها یک نصیحتی است برایش. و این نبر مرعوب از قریه کل امره این به ما ندهید پس این هم دو تا جمعه شد که بینشون مناسبت وجود نداره از نظر معنا هیچ کونه مناسبتی گرچه از نظر لفظی با همدیگه تناسب دارن هر دو جمله خبری هم حالا این هر دو جمله خبری ممکنه یه مقا هر دو جمله انشایی باشه اما تناسب معنایی با هم نداره این گفتم من بگه شما بگم بنویسید موضع دوم از مواضع فصل کمال انقطاع است بدروم رو میکنم اون طرف میبینم که یه نفری اومده دمه در میگم بگو چی خبره چی شده اون دوتا ربطی به هم نداره گرچه بگو با بنویسید هر دو جمله انشاییست کمال انقطاع سوم واقع از موازه فصل بیش میگن شب کمال اتصال شبه کمال اتصال این همون استیناف بیانیه استیناف بیانی یعنی جواب سوال مقدر جواب سوال مقدر اتصال صد درصد نیست بینشون که بشه کمال اتصال ولی شبه اونه, شبه اونه یعنی چی؟ یعنی که این جواب سوالیه که از کلام قبلی در میاد سوال و جواب خیلی به هم نزدیکند دیگه خیلی با هم چسبندگی و ارتباط دارن اتصال دارن ولی اتصالشون مثل اون مورد یک نیست که جمله دوم خودش بود یا بعضش بود م? بلکه سوال و جواب هم اتصال به هم دارن اما نه به اون اندازه لذا شده شبه کمال اتصال نگاه کنید انتكون جواب جوابن جمله دوم جواب است ان سآلن. از سوالی که يفهم من اولا سوالی که فهمیده میشه از جمله اول سوال از جمله اول یک جمله اول ایجاد سوالی میکنه و جمله دوم جواب اونه جواب اون استیناف بیانی انککون از ثانیتو جوابن ان سوالن یفهم و منال گولن. و یوغان و هینه ازن گفته میشه در این موقع ان ای بین جملت شبه کمال الاتصال اینجا گفته میشه که بین دوتا جمله شبه کمال اتصال بین دوتا جمله شبه کمال اتصال یادتون هستش توی خروج خبر از مقتضای ظاهر خروج خبر از مقتضای ظاهر ما به شما عرض کردیم یکیش این بود که جمله دوم جواب سوال مقدر از جمله اوله جمله دوم جواب سوال مقدر از جمله اوله یادتون باشه اونجا دو تا مثال زدیم براتون یکی ما اوبر و نفسی خبا ببینم یادتون می رفته نه ما اوبر او نفسی بعد چی می گفت ایلن نفس بسو، اینا نفسا، نعمارتون بسو. ما و بر و نفسی، اینا نفسا، نعمارتون بسو. خروج خبر از مقتضای ظاهر. تون افتاد صفحه 162 کتابتون خروج خبر از مخفضای ظاهر مثال زد ما او بر و نفسی اینن نفسن عمارتون بسود الان ما و بر و نفسی که گفته بود گفته بود من خودم رو تبرعه نمی من نمیگم من آدم خوبیم حضرت یوسف گفته و بعد از اینکه که حقانیتش ثابت شد انگار همه گفتتون چطور؟ چی شده مگه؟ نمیگه جواب داده بود اندن نفسه لعمارتون به سود چون نفس همیشه دنبال اینه که انسان رو به طرف بدی بکشه بنابراین من نفس رو هیچ وقت نمیخوام بگم معصوم پاک و خب این ما و و نفسی جمله خبریه بود انن نفس لعمارتون به سواد جمله خبریه بود ها از زن لفظی ارتباط دارند هر دو جمله خبر اما جمله دوم رو ما به اولی عطف نکردیم چرا چون شبه کمال اتصال رو داره جواب سوال مقدری که از کلام قبل هم. یه مثالم بالاش کو ولا تخاطبني فالذين ظلموا خدا به نوح اینطور فرمود لا تخاطبني فالذين ظلموا نوح دیگه در مورد این آدمهای نافرمی که ایمان نیاوردن و تو را کردند و گفتی که خدایا اینا آدم نمیشن نیای در مورد اینا پادر میونی کنیا لا تو نیفل خود این جمله که نوح دیگه نبینم بیای در مورد اینها بخوای پادر میونی کنی بخوای واسطه بشی ها دیگه از اینها نخوای دفاع کنی یا از این جمله نوح فرج سوال پیدا میشه که خدایا میخوای چکارشون کنی میخوای تو زمین فروشو کنی میخوای بکوشیشون میخوای آتششون بزنی سایقه بفرستی غرقشون کنی چی کار بکنی؟ خدا جواب میده این لهم هم جواب سوال مقداریه که از کلام قبله میمگن استیناف بیانی که خروج خبر از مختزای ظاهر بود در شو باید کلام رو ابتدایی می‌آورد ولی به دلیل اینکه کلام قبل ایجاد سوال کرده بود و مخاطب رو سائل کرده بود با عدات تنکید استهبابی می آورد یعنی جایی بود که باید کلام رو ابتدائی می آورد اما کلام رو طلبی آورده با این اینجا عطف نمیشه چرا؟ چون جمله دوم جواب سوال مقدر است افریست جواب سوال مقدر است افرست. فقط یه نکته ای رو بگم حالا دیدی که ما قبل هم دو تا مثال خونده بودیم اما این دوتا مثالی که سابق خوندیم ناتو خاطب نیفل لزین از انهم مغرقون و ما اوبر و نفسی ان النفس الامارتون به یه فرقی داره جمله یعنی ناتو خاطب نیفل نه انهم مغرقون درسته که جمله دوم جواب سوال مقدر از جمله اوله و شبه کماله بگید اتصاله و به همین دلیل عطف نشده حالا اگر یک نفری بگه که این دوتا یکیش انشائی لا خاطب نیفل لزین زلمان و یکیش خبریه به این دلیل هم عطف نشده اشکالی نداره اشکالی نداره دید گرچه تناسب دارن یکیش جواب سوالی یکی که از اول ولی یکی خبریه که فرق نمیکنه اگه حال میشه از موازعه بگید فصل میشه از موازه فصل ولی بارز بارز برای عطف نکردن تو اینجا بارز برای عطف نکردن تو اینجا کدوم بوده اینکه جمله دوم جواب سوال مقدر از جمله اوله شبه کمال اتصال بگه انتکون از ثانیتو جوابنن سوالن و یقال و هینه ازن این نبینن بین اینه شب حکمال اتصال گفتم میشه بین دوتا جمله شب حکمال اتصال هست نگاه کنید مثال کتابتون بگید قال ابو تمامه بید. جناب آقای ابو تمام گفته میگه که لیسل هجابو به مقصن انکلی عملا ان سماعت رجا هیل تحت جبود لیسل هجابو هجاب یعنی در پس پرده بودن دیده نشدن الفلام داره؟, داره یعنی نیست این حجاب یعنی این دور از دست دست بودن این در پس پرده بودن این دیده نشدن نیست به مقسن مقسن یعنی مبعد دور کننده اقصاهو یعنی ابعدهو نیست این هجاب و این در پس پرده بودن و دیده نشدن دور کننده تو را لی دور کننده از تو برای من عملا مفعول محسن عمل یعنی آرزو اینکه تو دیده نمیشی اینکه تو دیده نمیشی این که تو در پس پرده هستی. این که تو الان محافظ داری و نمیدونم دفتر و منشی و دستک و خلیفه شدی. این باعث نمیشه که من دیگه آرزوهام رو در مورد تو دور ببینم تو دور کننده باشی آرزوهای منو مگه تو که الان اومدی لیس شدی وزیر شدی وکیل شدی دیگه محافظی و و دیگه از دست ما رفتی بیرون این باعث نشده که من آرزوهام رو نسبت به تو دیگه بر ملا نبینم آرزوهامو دیگه بر باد ببینم نه لیس الهجابو به مخسن عنکلی عملا نیست این پرده و در پس هجاب بودن تو دور از دسترس بودن تو دور کننده از من دور کننده از تو برای من آرزور یعنی دیگه فکر کنم آرزور هم برای برده بگم بابایی فلانی تا موضوعی که ما خونش پیش ما بود می می و میشکی نبود و در خونهش میزدیم میدیدیمش و کارمون را میفتاد حالا که دیگه بگمش دیگه دست موش میگه یه همچی چیزی نیست تو این حجاب رو هم داری این حجاب، این محافظ و تشکیلات دور کننده نیست از تو برای من آرزو رو تو این سوال پیشمه چجور؟ تو که نه اونو میبینی نه ارتباطی باش داری پس پردست دیده نمیشه تو چجوری؟ امید داری دلیل میانی میگه این نست سماعت جا هی نته جبود زیرا آسمان امید بیشتر بهش بسته میشه رجا یعنی امیدوار شد رجا که یعنی امید بده رجا یو رجی یعنی خیلی امید بست میگه انه سماعت رجا یعنی ترجا شدیدن آسمان امید سخت بهش بسته میشه هینه تحت بو موقعی که پوشیده شده یعنی پوشیده شده از ابر میگه آسمون وقتی نگاه میکنی صافه کسی امید داره که باران رحمت بر بباره نه چه به آسمون بیشتر دل میبندند و آسمون رو بهش امید باریدن دارن موقعی که آسمان پوشیده از ابر میگه تو هم همینطوریه چون آدم کریمو تشویه میکردن به آسمان میگی که میباره میگه تو هم وقتی که در هجاب هستی دیده نمیشی این در پس پرده بودنت این در دسترس ظاهری نبودنت امید ما رو بیشتر کرده مثل آسمان که وقتی که پوشیده از ابرست، است امید به او بیشتر و سخته. این نستماعه طورت جاهی نتحت جاه جواب سوال مقدر از کلام قبله که چجور میشه که این ممدود دیده نشود ولی امید به برآوردن آرزوها باشه میگه مثل آسمان هر وقتی که پوشیده از ابر و دیده نمیشه امید نسبت به او چیه می. ان سمااعت تو جاهین پایین میگه که هاشیه یک المراد و به هجاب احتجاب و ممنوه ان منظور از هجاب اینجا، در پس پرده بودن محبوب است نسبت به قاصدین خودشون هایی که میخوان بیان ازش چیزی طلب کنند در دستازشون نباشد و مقصن یعنی مبعدون اقصا یقصی اقصا اسم فائل مقصن یعنی مبعد دور کنند و تحت یعنی تختفی تحت القیوم بیانان میشه در زیر ابرخود اینم موضع سوم که عبارت بود جمله دوم جواب سوال مقدر از جمله اول باشه که بهش میگن شبه کماله بگید اتصال استیناف بیانی و تو اون بحث خروج خبر از مختزای ظاهر گفتیم اینجا بهتره که این جمله دوم با یه عداد تحکیدی مستحبی بیاد تلوی بیاد که اینجا توی عبارت کتابم هم میبینید این از سماه توی اون دوتا مثال قرآنی هم دیدید این نه هم مقرقون این نه نفسه مارتون جمله دوم به شکل تلوی آمده بود در جایی که مخاطب خالی و ذهنه چرا به شکل تلوی آمده بود؟ به دلیل اینکه کلام قبل برای او ایجاد سوال میکنه و او رو در جایگاه سائل قرار میده او خودش سائل نیست، خالی و ذهنه آه؟ ولی ما معامله سائل براش میکنیم چون کلام قبل ایجاد سوال میکنه. بهتره که با عداد تأکید بیاد یعنی جمله به شکل طلبی این سه موزه موضعی بود که کتاب بیان کرد اما دو موضعی که توی اون هاشیه ایشون اشاره کرده ولی نگه برده گفته دو موضع دیگر رو هم اضافه کردند ولی ما متأخرین اضافه کردند ولی ما معتقدیم که اینها جزء جزء همین موضع سوم به حساب میاد یعنی میشه جزء موضع سوم یعنی شبه کمال اتصال قرارش داد ما بردیمش تو اون دیگه به عنوان موضع مستقل ذکرش نکرد اقسام رو کردیم تا و ایلا افثام میشه 5. تا. حالا اون دو موضع رو من برای شما میگم که کامل بشه بحثتون موضع چهارم شبه کمال انقطاع شبه کمال انقطاع حالا این شبه کمال انقطاع رو من براتون میگم شما هم وقتی که داشت کنید ببینید که راحت بعدم حالا هر دو موضع رو که گفتم نگاه کنید ببینید آیا در موضع سوم جا میگیره یا نه که بله با شکلی آدم میتونه جز موضع سوم قرار شبه کمال انقطاع اینه که ما سه تا جمله داریم هرگاه ما سه تا بگید جمله داشته باش امکان عطف جمله سوم به اولی وجود دارد میشه جمله سوم رو به جمله اولی عطف کرد سه تا خط تیره میکشیم جمله اول جمله دوم جمله سوم جمله سوم امکان عطفش به جمله اول هست میشه عطف کرد. هیچ مشکلی نداره درسته ولی ولی ما به جمله اول عطف نمیکنیم و فصل می آوریم زیرا در صورت عطف ممکن است توهم شود که به جمله دوم عطف گردیده است و در صورت عطف به جمله دوم کلام قلط میگردد غلط است خلاف مقصود به دست میاد خوشی گفتیم؟ گفتیم سه تا جمله داریم یک دو سه جمله سوم رو میشه عطف کرد به جای جمله اول. جمله سوم رو میشه عطف کرد به جای جمله اول. ولی ما جمله سوم رو به اول عطف نمی کنیم چون میگیم اگر به جمله اول عطفش کنیم شاید توهم بشه که به جمله دوم عطف شده. و اون موقع کلام غلط میشه و خلاف مقصود حاصل میشه. باز برای بار سوم میگم سه تا جمله داریم یک دو سه جمله سوم میشه عطف کرد به جای جمله اول ولی ما عطف نمیکنیم فصل میاریم چرا؟ چون میگیم اگر عطف کنیم ممکن است مخاطب توهم کنه به جمله دوم عطف شده که نزدیکتره و اون موقع کلام غلط میشه و خلاف مقصود حاصل میشه مثالی که بزنم براتون کاملا مشخص میشه شما میبینید مثل این این بیت رو بنویسید تزنو تزنو یعنی گمان می کند سیغه چارمه تزنو سلما سلما اسم خانمیست فایل و سلما اننی اننی عبقی عبقی با یعنی عطل عبقی به ها اون و مصرا بدلن بدلن اراها اراها رعا یرا یرا صيغه سیزدهمش همش ارا اراها یعنی میبینم او را معتقدم او را یقین دارم او را مراه فززلاله زلال با زاد یعنی گمراهی فززلاله تهیمو تهیمو باهی هی دو چشم یعنی تتحیر و گیج میزنه متحیر است تهیمو ببینید الان سه تا جمله اینجا هست یکی تزنه یکی عبقی که جمله عبقی به ها بدلن این جمله عبقی به ها بدلن خبر انده نیست عبقی یکی هم عراها فه زلاله تهیم عراها زلال تهیم ها مفعول اول آرا ها تهیم زلال جمله مفعول دومش آرا یعنی اعلم بخا با دارم او را یقین دارم او را تهیم فزلان این تزن و سلما و فایله اندنی عبقیبه ها اندنی اندن با اسم خبرش جای دوتا مفعوله تزن و. کل بیت رو هم ترکیب کردم که بتونید بفن حالا نگاه کنید این بیت غزله شاعر داره در عشق خودش نسبت به معشوقه خودش غذر سرایی میکنه میگه تزن و سلما گمان میکنه خانم سلما اننی عبغی به ها بدلن گمان میکنه که من ابغی اطلبو طلب میکنم بها به, به جای او بدلن کسی دیگری رو میگه این معشوقه ما سلما خانم بدبین شده به ما گمان میکنه که من کسی بهتر از او پیدا میکنم و کسی بهتر از او رو طلب میکنم ابغیبه ها بد. پس میگه سلما به من گمانی میکنه و گمان میکنه که من بهتر از او و به جای او کسی رو طلب میکنم بعد میگه عراح حافظ زلاله تحیم انگار یکی بهش میگه خلاصه اون داره بعد گمانی میکنه میگه تو کسی رو جاش میگیری تو میگیری یا نمیگیری تو هستی؟ میگه اراها حافظ زلاله تهیم؟ من باور دارم یقین دارم که اون داره گمانه بد میکنه داره در وادی زلالت و گمراهی متحیرانه میچرخه یعنی چه؟ یعنی من بهتر از او کسی به بدل از او اصلا بدلی ندارد که من بخوام پیدا کنم میگه او به من بدگمانه که من کسی به جای او خواهم گرفت من غلط بکنم اون تو گمراهی داره میچرخه مگه میشه مگه کسی با بهتر از او وجود داره اراحاف زلال تهیم الان فهمیدید که جمله اراحاف زلال تهیم میتونه استیناف بیانی باشه جواب این سوال که اون جمله قبل این سوال رو پیش میاره که خلاصه اون بدگمان شده به تو این بدگمانیش جا داره یا نداره میگه نخیر نداره داره وادی زلالت تحیم. ولی نگاه کنید اراحا به زلال میتونه عطف بشه به جای تزن و سلمان میتونه چون هر دوش در مورد خانم سلماست توی فعلی که جمعه که ما داریم توی یکیش سلما فائله توی یکیش اراحا مخواه یعنی سلمان مفعوده این دوتا جمله ارتباط معنوی دارند و ارتباط لفظی هم دارن هر دوش جمله فعریه هستند و هر دوش هم خبریه. می میشد عطف کنه عراها رو به جای تزن و سلمان درست شد؟ ولی عطف نکرده به اون چرا چون اگه عطف میکرد به جمله اول توهم میشد که ممکنه به جمله دوم عتف شده باشه و اگه به جمله دوم عتف بشه معنای شعر خراب میشه چی میشه معناش؟ معناش این میشه. نگاه کنید اگه عذ بشه به جای اراها به جای ابغی میشه جزء مزنونات سلما این میشه. نگارسن شعر غزل نیست. میشه تزن و سلما، سلما گمان میکنه دوتا تا چیزو. یک اننی ابقی به ها بدلن. من به جای او کسی رو خواهم گزید و گمان میکنه گمان دوم اراحا فزلاله تهیم و گمانم میکنم که اون هیچ میزنه متوجه هم نمیشه یعنی اصلا معنای شعری میشه و نگه غزل نیست اصلا میگه سلما گمان میکنه من به جای اون کسی رو میگیرم و گمانم میکنه که من اونو بگیر گیج میدونم و متوجه بگید نمیدونم تشمیره که اینو نمیخواد بگید که سلما دو تا گمان داره یکی این که من جای او کسی رو خواهم گرفت یکی اینم که من اون رو بگید آدم ساده و گیج میدونم میگم متوجه موضوع هم پس ببینید سه تا جمله بود جمله سومو میشد عطف کرد اراحاف زلال زلاله تهیم به جای تزن و سلما ولی شاعر ما عطف نکرد چون اگر عطف میکرد ممکن بود توهم شه کرده به جای جمله دوم ابغی به ها بدلن و معنای شعر کاملا عوض میشه دیگه اصلا غزل نیست و غلط در حالا ایشون میگه که این رو ما اسمش رو گذاشتن شبه کمال انقطاع ها کمال انقطاع نیست که از نظر معنایی صد درصد جدا باشن یا از نظر لفظی ولی شبهشه چرا چون اگر ما اد کنیم به جای اولی ممکنه توهم شه شد به جای دومی و کار خراب بشه گفتش ما این موضع چهارم رو نگفتیم به دلیل اینکه گفتیم اینو میشه تو موضع سوم جا که استیناف بیانی باشه جواب سوال مقدم ما, ما گفتیم بله میشه که اول گفته تزن سلما عنننی ها بدلند سلما گمان میکنه من کسی رو جای او خواهم گرفت خب این کلام هر کسی بشنوه این سوال براش پیدا میشه حالا سلما این گمان میکنه درست گمان میکنه یا غلط با جاش کسی رو میگیری یا نمیگیری میگه اراحاف زلاله تحیم مگه کسی میشونه جای اورو رو پر کنه من باور دارم که او در گمراهی داره حرکت خب این هم موضع چهارم موضع پنجم بهش گفتن التوسط و بین الکماله ادتوسط بین کمالید اد توسط و بین ال کمالید باشن یعنی وسط واقع شدن بین دو کمال کمال اتصال کمال انغتا از توسط بین کمالید این کجاست؟ جایی که جمله بعد از چندین جمله آمده یعنی قبلش چند تا جمله هست این بعد از همه اون آمده و امکان عطف اون، به هیچ یک از جملات قبل و امکان عطف آن به هیچ یک از جملات قبل وجود ندارد درست این جمله آخری که اومده فصل اومده خب چرا وصل نیومده چون اگه میخواستیم وصلش کنیم باید عطف میکنیم به یکی از این جملات قبل به هر کدوم میخوایم عطف کنیم نمیشه و وقتی نمیشه به هیچ کدوم عطف کرد پس میشه موضع موضع فصل اسمشو گشتن از توسط و بینن کمالین یعنی این جمله آخر به هر شکلی ما میخواییم به هر کدوم عطفش کنیم وجود ندار. حالا یه آیه مثال بزنم یه مثال که در ضمن مثال یادش بگیرید آیه اول سوره بقره است اما عوائلش می‌تونیم. میگه و ازا خلو الا شیاطین و ازا خلو الا شیاطین هم قالو نام اکن انما نحن مستحظ انما نح مستحظ الله و او بهم الله ازحظ خب و ازار خل و الالا نهم قالو انا معکم ان نما نحنو مستهزون این کلام قبل چند جمله است الله از بهم الله مبتدا از بهم جمله خبرش. الان کلام این کلام الهی رو که نگاه کنیم جملات قبلش یک ازا خلو و الاشایاتی نهیم خلا و نه فعل شرته مضافون الیه ازاز جمله فعل شرط این یک قالو این جمله جزای شرطه که ناسب ازا هم هست از اضافه میشه به فعل شد به جزای شدش قانون. این دوتا این نام این جمله سومه، این مقول قوله مفعول قالوس. این نما نهنو این جمله چهارمه. این انما نحنو مستحزون این جمله جواب سوال مقدر از این نامعکومه. یعنی استیناف بیانی درست شد با این نمام کرده نحنو رو در مستحز اون قصر موصوف در صفته اضافی هم هست اضافیه از نوع قلب هم هست حالا توزیی که بیل میکن اینا رو خوندی میگه که ازا خلو و ال هم. منافقینو هم میگه میگه هنگامی که منافقین با شیاطین خودشون خلوت کنن خلو و هم یعنی با اونها مجالست کنن خلوت کنن منظور از شیاطین اینجا رواعارشونونه اصداره مسلحه است دیگه رعصای اونها رو تشبیه کرده به شیاطین با رعصای خودشون که مثل شیاطین هستند و یه شیاطینی به حساب میان وقتی خلوت میکنن قالو منافقین میگن که منافقین میامدن پیش مسلمان ها خیلی هم ادعای اسلام میکردن وقتی میرفتند رفتن پیش خودشون اون منافقین بزرگ قالو برمیگشتن به اونها می گفتن انا محکم بابا ما با شماییم ما هم کافرین به اینها ما به اینها ایمانی نداریم ما مثل شماییم انا محکم بعد از این انا محکم یه سوال پیش میامد چی پیش می اینکه اگر شما با مایید پس چرا با مسلمونا میچرخید چرا با اونا دارید؟ پالودو می خورید اگر با ما هستید شما؟ تو از این انامه کن این سوال پیش می اینا جواب میدادن. دارن این نحن و بابا ما فقط داریم اینا رو مسخره یعنی مؤمن به اینها را نیستیم. یعنی شما گمان میکنید که ما با اینا هستیم مؤمنیم به اینا ایمان داریم به اینا نه ما فقط داریم اینا رو مسخره میکنیم ما با اینا میچرخیم به ریش اینا میخندیم این نما نهن و ما فقط داریم اینا رو مسخره میکنیم ایمان به اینها نداریم شما گمان نکنید که ما به اینها ایمان داریم بعد خدا میگه الله و بهم به یه الله و بهم به بنابر اون که تو این کتاب هست میگه میشه اینو استیناف بیانی بگیریم میگه حالا این پدر که یک شنین کاری رو میکنند که با حساشون میشینند میگن ما با شماییم و ما فقط داشتیم اینا رو مسخره میکردیم خب خدا با اینا چیکار میکنه این سوال کش میاد میگه اللهوی از تحضابه خدا حواسش به اینا هست اینا رو سرداشون میشونه خدا مزد است اصلاح اینها رو بهشون میده اللهوی از تحضابه این فقط نظره که اما اونهایی که گفتن این ادتوستو بین کمال اینه میگه گفتن این اللهوی از رو ما به هر کدوم از این جملات قبل مخوایم عطف کنیم فراب میشه معنا به جمله خلا و نه هم نمیشه عطف کرد گرچه جمله شرط باید فعلیه باشه ولی حالا فرض کنه اصلا بشه یسته الله اللهو به هم حد بشه نمیشه عطفش کرد به جای ازا خلا چرا چون اگه عطف کنیم به جای ازا خلا و الاشایاتینه هم معنای میشه زمانی که خدا به اینها استهزا میکنه اینها میگن که انا ما اکن. زمانی که خدا اینها رو داره گوشمالی میده چون اگه حتفش به جای میشه فعل شرط دیگه در صورت که گفتن اونها به رؤسای خودشون انا ما اکم انا ما مشروط به استهزای الهی نیست مشروط به زمان استهزای الهی نیست اگر عطفش کنیم به جای خلا و اله هم در واقع میشه فعل شرک اینطور میشه ازا اللهو یستهزعو به هم یعنی ازا یستهزعو الله به هم قالو این درست نیست معنا میشه انگامی که خدا به اینها استهزام میکنه داره اینها رو گوشمالی میده اینا میگن این نام هم. خب پس به جای خلاو نشد چون اگر به جای اون عطف کنیم قید میشه برای قالو و این درست است به جای قالو هم نمیشه عطف کرد تزریمش جای قالو هم درست نیست چون معنای میشه اذا خلو ال الشیاطینهم فلاهی استهزاء بهم. زمانی که اینها با شیطان خودشون خلوت میکنند خدا اینها رو استهزاء میکنه خدا اینها رو مزدشون رو بهشون میده عذابشون میده. نه عذاب الهی زمانش ازاخله و الی شیاطین نیست معنای اگه بره جای قالوی میشه دیگه ازاخله و الی شیاطین هم فلاهوی از تهزا هم میشه جزای دیگه و معنای آیه میشه هنگامی که اینها با شیاطین خودشون میشینند الله او بهم به خدا اینها رو استهزا میکنه و این درست نیست. به جای ان معکم و انما ما نحن مستهزئون نم نمیتونه بشینه. چرا؟ چون اگه جای اونها بشینه میشه معقول قول. میشه گفته منافقین اصلا منافقین این الله از یستهزه به هم ممتونه معنایی میشه ازا خلا و اله هم قالو الله و به هم. زمانی که اینها با شیطانهاشون خلوت میکنند این منافقین موقعی که با روحساشون خلوت میکنند قالو میگن الله از یستهزه به هم مثلا اونه هم چند الله و بهم امکان اضح به جای ان معکم و انما نحن مستهزون نمیشه به جای ان معکم اطفش کرد که بشه معقول قول نه به جای نما نحن مستهزون که اونم معقول قوله و استیناف بیانی هم از جواب سوال مقدم نمیشه به اونم اطفش کرد چون جملات قبل بیان شد جواب شد مقول قول ان ما نحن اون اونم مقول قول استیناف بیانی هر کدوم یک نقشی دارند که اگر الله است اززهو بهم بخواد اون نقش رو بگیره که الان غلطه نمیشه به هیچ کدوم از این جملات قبل که هر کدوم در عبارت نقش و وظیفه ای دارند امکان عط وجود نداره. چون نمی شده به هیچ کدومش عط بکنی فصل آوردیم بهش گفتن کمال ادتوسط بینل کماله التوسط و بینل کماله, کماله, کماله. سال کتاب ما گفتی میشه شه جزء موضع سوم دونست اللهوی از تنظ جواب سوال از کلام قبل و این هم میتونه باشه چون گفته که منافقین وقتی با بزرگانشون خلوت میکنن میگن ما با شما این فقط داشتیم میان مسخره میکردیم میگه خب خدا وقتی اینا یه همچین غلطی میکنن این سوال پیش میاد خدا در مورد اینها چه میکنه؟ جواب میده اللهوی از تنظ خدا اینا رو سرجاشون خواهد، نشود تو حاشیه پایین اگر دیده باشید که اون روزم خوندم و بعض المتاخرین من علماء المعانی الا زيادت موضعين لفظ الا المواضع التی ذکرناها ولاکنه حاذین الموضعین عند تامل يمكن رد هما الالموضع الثالث حالا ما با توجه به اینکه مثال ها رو خوندید بیاید بحث کتاب رو هم من برای شما بخونم عنوان میکنه تامل. صفحه 229 پاراگراف دوم دو که از مثالهای چهار پنج شش که امروز برای شما خوندیم موزه کمال انقطاع و موضع شبه کمال اتصال میگه تعمل مثال لی الطاعفت الثانیته دقت کن در دو مثال گروه دو تجد العمر علی العکس میبینی موضوع برعکس قبله قبلی کمال اتصال رو داشتن اینجا کمال انقطار رو دارن. نهایت از هم جدایی باعث شده که فصل بیاری فعرن بین الجملتل او را و ثانیت فی کل مثال منتحت تبایونه و قایت ابتداد زیرا بین دو تا جمله اول و دوم در هر مثال نهایت مخالفت است، تباین است و نهایت و قایت دور بودن از هم یعنی هیچ ارتباطی به هم ندارند مثل کارد و پنیرند فا این نبین و الثانیته فی کل مثال منتحد تبایونه و قایت ال اتعار. فن نه همافیل مثال راب مختلفان خبران و انشان از نظر انشا و خبر مختلفند. گرچه از نظر معنا ارتباط دارند. جواب نداست یا صاحب دنیا، المحب بلها، اندلزیلايان غزیتابو نداه است و جواب ندا. ولی؟ از لازار لفظی یکی خبری که اینشای امکانه عطفش وجود نداری المثال رابع فین فی مثال رابعه مختلفان خبرن به اینشای و حاضر جلی یون واضح و این هم خیلی واضح و روشنی که نمیشه خبر به اینشای اینشای رو این به خبر اما در مثال پنجم در مثال پنجم فلعنهولا مناسبت بینه ما مطلقا مناسبت معنایی رو میگه چون این مناسبت لفظی هست هر دو جمله اسمیان این نمال مرعوب به قریه کلوم ره این رهنون به ما لدهی هر دو جمله اسمیان هر دو هم خبریان از لفظی ارتباط دارن اما از نظر معنا ارتباطی بینشون نیست ما فی المثال خامسه فلعنه لا مناسبت بینه هما مطلقا بهطور طور مطلق بین اینا از در معنا ارتباطی نیست از لا رابطه تفل معنا بین قولهی زیرا هیچ رابطه معنایی بین قول اول شاعر ما و این نول مرعب اسقره و قولهی قول دومش کلون بین رحمن به ما وجود نداره از لا رابطه تفل معنا بین این و این خب وقتی رابطه معنایی نیست پس بنابرای عطفاً نبکنیم دیگه کمال انقطار و هنا تجدو من جمله از تفیک کل من المثال اینه مفصولتن ان الولا. و اینجا شما میبینید جمله دوم در هر مثالی جدا اومده از جمله اول عطف. عطف نشده چون انقطاع دارند حالا یا انقطاع در لفظ یکی خبر یکی در انشا یا انقطاع در معنا هیچ معناشون به هم مرتبط حالا سوال اینه اگر یه جایی هم انقطاع در لفظ باشه هم انقطاع در معنا یعنی یکی خبر یکی انشاء و از طرف دیگه هیچ ارتباط معنایی نداشته باشه چی؟ اون دیگه صد صد. اون از دو طرف قول خودمون مشکل داره اون دیگه به طریق ولا سر رل و هیچ رازی برای این منفصل اومدن فصل اومدن نیست الا ولا سر رل زالک الا کمال و و شدت و تباین. هیچ رازی نداره جز اینکه که اینها هیچ ارتباطی با هم ندار شدت گرگودن از هم دو دارن و کمال جدا بودن از هم مختلف دارن ولی زارکه یغال و فی هاز الموزه این نبینه جملت اینه گفته میشه بین دوتا جمله کمال انقطاع هست من ارس کردم حالا اگر این دوتا جمله که در یکیش ما دیدیم از نظر لفظی خبر انشاء بودن در یک ششمی از نظر معنایی به هم ارتباط نداشتن حالا ما دو تا جمله داشته باشیم از هر دو جهت مختلف باشن دیگه اون دیگه کمال کمال انقطاع درست شد پایین یه حاشیه‌ای داره نگاه کنید انما وجب ترک العصب هنا همانا واجب شده ترک عصب در اینجا عطف چون عطف میاد دوتا جمله رو به هم میچسبونه اینجا قابلیت چسبوندن به هم وجود نداره قابلیت اتصال نیست حالا قابلیت اتصال نیست در مورد اولش از نظر لفظی در مورد دومش از نظر معنوی مورد سوم هم که من گفتم که از این استنبات میشه هم لفظی هم معنوی لهن نلعتبه یکون و لجمع بینش شعین و للجمع والربط ان لجمع و للجمع این عطف یکون و لجمع بینش جای جمعه یعنی وله ربط برای جمع کردن بین این دوتا و ربط بین این دوتا ولا یکون و ذالک اپر معنیین ازاکان بینه همه غای دوتا و این امکان نداره در دو معنایی که با هم دیگه قایت تباییان داره. همچنین در دو لفظی که با هم دیگه قایت تباییان داره. برد جایی که دو تا معنا با هم نهایت جدایی رو دارن. یکی از کدو صحبت میکنه یکی از کروات که این دستا نمیشه به هم عدوش میکنه. یا نه ارتباط معنایی دارند اما ارتباط لفظی ندارند یکی خبر خبری یک یا نه هر دوتا اینجا اصلا امکان اینکه این دو تا رو به هم بچسبونیم کنیم نیست حالا اونزر الالمثال الاخیر نگاه کن به مثال آخر مثال ششم که شبه کمال اتصال بود اونزر الالمثال الاخیره تره ان لت از ثانیه قویت رابطه به جمله اول میبینی که جمله دوم خیلی ارتباط قوی داره به جمله اول جواب سوال که از جمله اول در میاد در جواب جواب ان سوال نشامل ال اولدا فكأن ابا پس گویا ابا تمام بعدا نطبق به شطر الاول بعد از این که نطق کرده مصرای اول رو توهم ان لسائلن سعده گمان برده که سائلی از او سوال کرده کیفه لا یهول حجاب الامیر بینکه و بین تحقیق مالک آخه چطور میشه آقا که این در پس پرده بودن امیر و خلیفه بین تو و بین تحقق و آمالت فاصله نکنه چطور میشه تو دستت به خلیفه نرسه ولی امید به برآورده شدن آرزوهات داشته باشی خیلی راحته روز آسمان وقتی من نمیبینمش بیشتر بهش امید دارم فعجاب پس عجاب جواب داده این شاعر ما ابو تمام که ان السماء ترج جاهین تهتجو این آسمان از سمان ترج سخت بهش امید بسته میشه اینه تحت موقعی که در فسحبره در هجابه فا انت ترا انل جملت از ثانیتا عن ننرولا تو میبینی که جمله دوم جدای از جمله اولا بلا سر ها هاز و هیچ رازی نیست برای این جدا اومدن الا مگر قوت و رابطت بینن که بین دو تا جمله نهایت ارتباط هست فعلال جوابه شدید الارتباط ارتباط به اتصال به سوال زیرا جواب شدیدن مرتبط به سواله مگه نمیگن سین جیم میکنه آ این سین جیم سوال جواب سوال جواب ولا سلال حاز الفصل الا قوت و رابطت بین الجملت فان الجواب شدید ارتباط به اتصال به سوال فاشبهت على حاله هنا من بعض الوجوهان و شرائط در اینجا از بعضی از وجود از بعضی از قسمتها ها فاشبهت فا على حاله من بعض الوجوه حال کمال اتصال کمال اتصال عین خودشه این سوال و جواب عین خودش نیست مشابهشه چون سوال و جوابم خیلی به هم نزدیکه فهش وحد ال حال و هنام بعضی وجوه کمال الاتصال الاتی تقدمت و لزالکه یقال و ان لا بین الجملتین شبه کمال بین دو جمله شرف کمال اتصال مواضع فصل به طور کامل تمام شد مواضع وصل رو انشاءالله شاء الله جلسه بعد خواهیم خوند و تمرینات زیادی هم داره که مال هر دو موزه حل میکنیم و این موزه فصل و وصل انشاءالله بهطور الله به طور کامل هرچند خیلی برای این موزه مایه گذاشتم و خیلی جموجور رو به شکلی که شما کامل درکش بکنید و هیچ نیازی حتی به اینکه سختی بکشید داشته باشه و به طور کامل باشه بیان کردم انتظارم امینه که شما انشالله در این شرایط همانطور که انتظار ما هم از شما درسته خوب بخونید و یاد بکنید همه تونو به خداوند صبحان می سپرم که در پناه خداوند محفوظ باشید تا و عبادات شما هم قبول باشه و اید فطر رو هم پیشا پیش خدمت شما تبریک میگم این که که خوبی رو از خداوند تعالی به عنوان ایدی دریافت کنید و السلام علیکم و رحمت الله و